به نظرم این روزا، رفتگرها، خیابانها را بیشتر تمیز میکنند. چرا مردم فرش میشوید؟ چون سه هفته بعد سال جدید شروع میشود. مردم خودشان را آماده میکند. چطور مردم خودشان را آماده میکند؟ ایرانی ها، خانه ها و خیابانها را قبل از نوروز تمیز میکند. آنها همه جا را میشویند. نوروز در ایران چه روزی است؟ ما به اولین روزهای سال نوروز میگوییم. نوروز یک جشن ملی ایرانی هاست. ایرانی ها برای نوروز دیگر چه کاری می کنند؟ آنها لباس نو می‌خرند، شیرینی میپزند یا میخرند؟ درست است. بازار هم این هفته خیلی شلوغ است. ایرانیها در عید نوروز به مهمانی می روند. به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر، فامیلها و دوستان.